بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب الضحك حدثنا سليمان بن داوود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحور عن واثلة بن الأسقع عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن نبي هليرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين و آله و أجمعين اما بعد سد دهومين باب از أبواب صحيح هذا مفرد قفته يمان بخاري رحمه الله و اسكنه فسيح جناته باب الضحك ما قفتیم ابراز خوشحالي و خورسندي ست درجه داره درجه, درجة اول انسان با لبخنده ابراز میکنه درجه دوم با خنده و درجه سبان با قحقهه قحقهه این حالا احادیث خصوصاً که در من عمده از خندیدن خندیدن اون باسود بلند و که قحقهه هست حمد میشه اون احادیث بر اون لبخند زدن که شر بشتوسیه کرده چنانچه در احادیث قبلی هم داشتیم بلکه از صدقات بحساب میاد و تبسومکه فی وجه اخی که لک بی هستقه و تبسومکه یعنی همون ابتسامه و همون ل چه در چهره همسرت چه فرزندت چه دوست و رفیقت برات صدقه محسوب میشه صدقه صدقات تبسم فقط لبخند زدن صدقه است اما خندیدن خندیدن در شب مطلقاً من شده زیاده روی در خندیدن ممنوع است باطل همینجا حدیث داریم حدیث ربهره رضی الله عنه وغفر الله له ولأمه که میگید شریدم رسول الله صلی الله علیه و سلام اقل الضحك و در روایت بعدی دومی که خوندن لا تکثرو ضحك زیاد نخندید زیاد نخندید ده تکثرو عندک به در روايت ديگر فاينه كثرت ضحكي توميت القلب زیاد خندیدن قلبم ميميرانه خندیدن مشکلی نیست زیاد خندیدن مشكل داره مشكلش چيه قلب رم ميميرانه دو تا مطلب اینجا در اين حديث مطلب اول اینکه قلب يا زنده است يا مرده قلب يا زنده است يا مرده یه سری چیزا هست قلب را میمیرانه نگاه نامحرم کردن موسیقی گوش دادن زیاد خندیدن غیبت کردن دروغ گفتن بهتان زدن اینها قلب را سیاه میکنه تاریک میکنه قلب را میمیرانه چنانچه در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلام انسان گناهی مرتکب نمیشه مگر نقطه ای سیاهی در بر روی اون قلب زده میشه تا اینکه کامل سیاه بگرده سا... کامل سیاه میشه قلب سیاه میشه با گناه با معصیت زیاد خندیدن هم سبب میشه قلب بمیره قلب سیاه بشه وقتی قلب سیاه شد تاریک شد سبب میشه که چی؟ اون شخص دیگه نسبت به حلال و حرامش میتوجه بشه خب شما بینید؟ طرف چقدر حزینه میکنه خاطر که یک فیلم کومیدی بهش میگن چه بهش میگن؟ فیلمایی که پر از خنده و پر از قهقهه و پر از مطلک و مسخره و از اینجور شیزا توش هست هزینه میکنه. از وقتش میگذاره جلو تلویزیون، از وقتش هزینه میکنه برای رفتن به سینما، از نگاه کردن این کلیپ و اون کلیپ وقتش رو فقط داره میگذاره، نگاه هم نمی کنه طرف که اون مسخره نسبت به دین نسبت به شریعت الهیه یا نسبت به الله پیغمبر اصحاب ملائکه است. فقط میخواد بخنده، فقط میخواد خوشحال باشه، خرسند باشه. با چی؟ با حرام. چی سبب شده که این شخص روی بیاره به این چیزها؟ قلب تاریکش قلب مردش چون نرفته زندهش بکنه چون نرفته نورانیش بکنه تبدیل شده به قلب مرده الله جل وعلا در قرآن چی میگه و کذالک اوحین ایلیک روحا من امرنا قسمت اول و کذالک اوحین ایلیک روحا من امرنا چی بر تو نازل کردیم؟ روحی از طرف ما روح سبب زندگانی من و شما میشه دیگه وقتی که در ما روح دمیده شد زنده شدیم قبلا که مرده. ابتدا یک جنینی. که روحی درش نبوده سپس با دامیده شدن روح در اون جنین ما شدیم انسان روح انسان رو زنده میکنه. الله جل و علا میگه این قرآن نوره، این قرآن روحه. كذلك وحینا ایلک روح من امرنا. ما کنت تدريم الکتاب ولا الیمان، ولکن جعلناه نورا. تو نمی کتاب چیه، قرآن چیه، سنت چیه، نمی این چیزا بس این قرآن روحه و این قرآن نوره. با روح زنده میشه و با این نور نورانی میشه، شکوفا میشه. خوشیش و خوشحالی و خرسندی در چیز دیگه میبینه در التزام و پایبندی به دین و شریعت میبینه در مذاکره قرآن قرآن انسان را زنده میکنه خصوصا قرآن با تفسیرش خوندن که شما خودتون لمس کردید و دیدید اون موقعی که تفسیر سعیدی رو باز میکنید خیلی خلاصه از اون تفسیر عبور میکنید گذرا میخونید چقدر تاثیر داره در نفس انسان انسان نفسش زنده میشه خصوصا سوره هایی که درش بحث جهنم و بحث بهشت مثل سوره إذا الشمس وكفورات وإذا السماء انفترات وإذا السماء انشقت همه بحث قيامته أحوال وروز قيامات حصاب وقطاب پربنده بدأس قرفتهم وإذا الصحف ونشرات وإذا السماء وكشطات عز النشانهاكيات ميكون الله جل وعلا عز النشانهاي ساخت إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم خب إنا همه ياداوريه كساني خوب بودن نيك بودن نيكان پربنده بدأس راس ميگيرن ودر نعيم خوشيهن و, الابرال لفی و اما فجار گناهکاران و تبهکاران و اما فجار لفی جحیم در جحیم در عذاب در جهنم هن، میسوزن با آتش بخاطر چی؟ بخاطر که صالح نبودن، نیک نبودن خب اینها انسان را بیدار میکنه، هوشیار میکنه زنده میکنه، قلب را از اون تاریکی ها در میاره قلب را از اون ظلمات و از اون سنگی که درش داره به سر میبره و مردگی که داره به سر میبره چون قلب سنگ میشه قلب سنگ میشه ثم قسد قلوبهم فيا كالحجاره واشد قسوه قلب سنگ میشه قلب سخت میشه قلب تاریک میشه این قلب سخت و سنگ را باید با روح با قرآن با وحی با سنت زندهش کرد و باید بعد از زنده کردنش نورانیش بکنیم با مدارسه با مذاکره و با مراجعه با یاداوری و تذکر و دست بکشیم از اون چیزهایی که سبب میشه اون نور و اون زندگانی ازش گرفته بشه که تبدیل نشه به سنگی، به سختی، به تاریکی تبدیل نشه اون قلبمون به اون سیاه چالی که دیگه نه نور وح درش تأثیر بذاره و نه سنت باید برحضر باشیم پس زیاد خندیدن، زیاد مشغول دنیا شدن و دنبال اسباب رفاه گشتن اینها انسان را از آخرت غافل میکنه بر حذار باشی قلب غافل نشه چون اینجا یعنی این حدیثی که داریم میخونیم یک خشدارید از زیاد خندیدن چون زیاد خندیدن انسان را غافل میکنه از ذکر و یاد الله چرا انسان میخنده؟ یعنی شما مثلا سوره شرایط اگر کورات را بخورید یا اگر اگر سباه شکت را بخورید شما میخندید وقتی که به حال روز خودت مینگری وقتی که از احوال روز قیامت الله یاد میکنه إذا السماء مشقت وإذا السماء انفطرت همي هزا وسمان الشروم يقول الله بعد ميرى به نشانه هيدئا واذنى لربها وحقت وإذا الأرض ملبدت والقت ما فيها وتخلت واذنى لربها وحقت وحق وسمان شكافته ميشه زمین شكافته ميشه والقت ما فيها وتخلت زمينه هرشي دار خودش دار بيرومي ده توهم جزيز أزن زميني تو بيرومي دي. حتى حيوانات شمعون جه و سوری در شمس کورت میگه وید البحوشو حوشرت وید البحارو سجرت همه این ها نشانه هست برای شی برای این که تو به خودت بنگری به اعبال خودت بنگری قلبت نمیره قلبت زنده باشه بیدار باشه و حوشیار باشه زندگانه اینه کشیاریه آماده سازیه نفس برای اون دنیا زیاد خندیدن و مشغول دنیا بودن و شدن سب میشه که تو دکه از یاد آخرت غافل میشی فراموشش بکنی به فراموشیش بسپاری در غفلت به سر ببری چناچ میبینیم از صبح طرف بلند میشه برای یک لقب نان داره آوردن به فکر آخرتشی اصلاً نگام نمیکنه این نونش حلاله یا حرامه چی چی سبب شده این شخص غافل بشه دنیا دنیایی که فانیه دنیایی که ملعونه دنیا ملعونه و ملعون ما فيها دنیایی که ملعونه نزد الله الا ذکر الله و ما ولا. دنیایی که ملعون پس نزد الله تو بشه اهمیت داری میری. خودت میکشی برای این دنیا به دست اوردن ولی برای دین تذلیل نمی کنی برای قلبت نورانی شدنش ازینی نمی کنی از وقتت نمیذاری وقتی که تو بی اهمیت شدی الله هم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فلما زاغوا از تو پیش بیاد، انحراف بسد درهای قلب از سو شروع میشه تو که در قلبت رو بسی الله اون نورش رو از سو بگیره در دست خودت میخوای بازش بکنی میخوای ببندی نور هست قرآن هست، سنت هست. دست خودت بخوای بازش بکنی ببندی. یکی از چیزهایی که سبب بیشه در قلب بسته بشه زیاد خندیدنه بر هزار وادت سراغ باشه از اون چیزهایی که قلب را بمیرانه و قلب را تاریک بکنه و سیاه بکنه. بله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زیاد عن أبيه راير ترذى الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم صرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا سادو نوادو یکومین حدیث از حدیث سهیاد مفرات حدیث بهریر الله عنه و الله له و الامه کمی گیات خرج النبی صلی الله سلم علی راحت من أصحابه راحت مجموعیه مجموعیه از أصحابی غرنا رسول الله صلی الله سلم که من جویدن رسولم می رنازشو بعد می بینی که من هدرم می خنده یا ضحكون و یا تحدثون درن شو خیمی کنن و می خنده فقاهه ولی نفسي بياد من جو قسم ياد میکنم رسول الله صلی الله عليه وسلم ازين حال ازين واقعا کلام روخدا ده رسول صادم ناراحته وقتی که میبینه اصحاب و یارانش دارن میخندن صداشون بالا اومده با اون خندیدن چون گفتیم لبخند صدا نداره ولی خندیدن صدا داره رسول الله وقتی که این حالت رو میبینه ناراحت میشه قسم یاد میکنه و الذی نفسی بیاده لو تعلمونم ما اعلم اگر بدانید اون چیزی که من میدونم اگر بدانید اون چیزی که من میدونم رسول الله به رفته بهشت رو دیده جهنم رو دیده غیر از امه عروج در همین دنیا الله جل و علا بهشت رو جلویش میاره جهنم رو جلویش میاره میبینه اون اشخاصی که در جهنم میسوزن چرا میسوزن خاطر همین اینجا بهشون میگه لو تعلمون ما اعلم اگر بدانید آن چیزی که من میدونم لضحکتم قلیلا ولا بكیتم کثیرا لضحکتم قلیلا کم میخندید ولا بكیتم کثیرا و زیاد گاری میگردید زیادت گاری کردید چرا باید بگریان؟ چرا گریه برای چی؟ چرا باید؟ رسول صلی الله عليه ووسا این چین بیاد اونها را با این سختی هش دار بده. وقتی که داره بهشون میگه که شما اگر میدونیستید اون چیزی که من میدونم زیاد به حال روز خودتون گریه می چرا باید بگریان؟ چون انسانه مقصر و درگاهی های هر چقدر بخواد عملی نیک انجام بده میموند آخرش گناهی مرتکب شده معصیتی انجام داده. که در ازای اون باید عقوبت بشه توبیخ بشه اصلا باید بگی بر اون گناهی که ازش سر زده نه اینکه خوشحال بشه خرسند بشه و با قهقهه خنده بزنه و صداش در بیاد با اون خندیدنش و اینا خوش داره خوش داره رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله جل و علا در قرآن یاد میکنه از بس منافقین میگه فلیضحكوا قلیلا و قلینا كثيرا فلیضحكوا قليلا بسری در این دنیا منافقین بخنده. هر چقدر بخندند این دنیا کمه اندکه ولی خواهد آمد روزی که بگریان ولی ابکو کثیرا خواهد آمد اون روزی که زیاد بگریان گریه بکنن گریه اون جهنم با اون عذاب و اون عقوبت الهی جل و علا در حدیث دیگه داریم حدیث ابوذر غفاری رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله و سلم انی ارى ما لا چیزی که ما میبینیم شما نمیبینید از اون احوال و های جهنم و اسمع ما لا تسمعون چیزی میشنون که شما نمیشنوید رسول الله صدای جهنمی را شنید از کنار قبر دوتا صحابی رد میکنه عذاب خودش را الله نشونه رسول الله میده که چونه اون دوتا انصاری به دوتا گناه کوچک عذاب میبینه مره نبی صلی الله علیه و انهما فقال ما يعذبان من کبیر بل انهما لكبير فکر نکنید اینا این دو نفر به کار بزرگ بزرگی عذاب می‌بینن بلکه کار بزرگیه فاما احد ما بکن يمشي بالغي و دروات و اما الاخر فكان لا يستنز و دروات لا من و که قال علیه الصلاه و السلام یکیشون حله غیبت بود در اهل نمامی خبر چی کی اساس ما غیبت نمی کنه صحابی رسول الله صلی الله علیه و السلام عذاب داره میبینه توفیق اسلام رو پیدا کرده هدایت رو پیدا کرده ولی به خاطر اون گناه داره عذاب میبینه در قبرش رسول الله صلی الله علیه و السلام زنده است ملاقات رسول الله کرده همرا رسول اساس جنگیده و جهاد رفته ولی با این وجود اونجا داره عذاب میکشه و رسول میاد شفاعت میکنه در حق اون دونفره یکی آخری هم خودش از نجاست پاک نمیشوفی یا دور نگه نمیداشی که به بدنش نرسه چون نجاست وقتی که به بدن برسه دیگه خب نماز انسان باطل میشه تو باطل انسان مورد قبول درگاه اله الهی واقع نمیشه پس اساس اصلا میفرماین من اون چیزی میبینم که شما نمیبینید اون چیزی میشنم که شما نمیشنوید اططف و حق لها انطط اططف السما اطيط اونگه خروش خروش شطور معمولا بهش میگن اطيط اططف السما و حق لها انطاعت حق لها انطاعت از چی و چرا این بخروش در مده آسمان اهمتر که الله بس میکنه از آسمانش که از غیرتش نسبت به الله میگه تکاد و سموات یا تفطر نزی که آسمان شکاف بداره از شی، از گناه و معصیت از کفر و شرک از اون سخنهای ناروا ناپسند از اون چیزی که نصارا ادعا میکنن که عیسی فرزند اللهه الله این مخلوقاتش را قدرتی داده که بشنون ببینن حال روز ما آسمانه, آسمانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داره اثبات حیات و زندگانی براش میکنه همونطور که الله در قرآن یاد میکنه تکد و سموات و یتفطت زندگانیه داره میشنوه میبینه الله هم میبیند و میشنوه و اینا را هم گذاشته غیر از ملایکهش که بشنمن ببینه از اون مخلوقاتی که دور بر خود ما هست. همین زمینی که من اینجا روشن شستم روز قیمت میاد گواه میده که اینجا بله نشست به خاطر علم به خاطر دینش هر جایی که تو نماز خوندی اونجا زمین میاد گواه میده که بر من اوقات اینجا نماز ب... یا گواه بر تو یا گواه بر علی تو گناهی معصیتی انجام دادی اون زمین میاد روز قیمت گواه میده بر علیه تو خب اینا یاداوریه حق دارم آسمان میگه رسول الله صلوات که به خروش در بیاد صداش بالا بیاد اون بانگ اون خروش حق لها انطایت حق داره باطر سرپیچی و نافرمانی مخلوقات که میبینه ما فی موضع اربع اصابع الا و ملک واضع جبهته لله ساجد بدونید در آسمان ها به اندازه چار انگشت نیست مگر اینکه در اونجا فرشته سر به سجده الله نهاده و گذاشته الله محتاج سجده من نیست الله محتاج سجده من نیست خب اینجا بحث پرشدگانه عبادت میکنن چون میترسن سر به سجدی الله گذاشتن حب. یه قسمتش اینه یه قسمت بحث آسمانه و سخن گفتنش آسمانه و شنیدنش آسمانه و صدایی که ازش بیرون میاد همونطور که ما در قرآن داریم گفتیم اشاره کردیم تکد و سمات و یتفطر همونطور که آسمان از غیرتی که نسبت به شنیدن سخن نسارا به غیرتش بر میخوره و نزدیک شکاف ور بده از عصبانیتش از خشمش نسبت به اون حرفی که میشنوه ان دعو للرحمن ولدا ادامه می که عیسی فرزند خداست این اثبات حیات برای آسمان حیاتی زندگانی برای خودش داره آسمان و این اثبات حیات دلیل بر اینه که که این صدایی که از اون آسمان در میاد یک صدای حقیقیه برخلاف اونهایی که گفتن مقصود از این حدیث صدای مجازی مقصود اینی که مفهوم رو برسونن رسول الله صلی الله علیه و که آسمان داره سنگینی میکنه از وزور که برش نه صدا صدای حقیقیه و این اطیت اطیت حقیقیه اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن هم صدا داره و هم میشنوه الی آخره اون چیزی که متعلق به این حدیث والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم والله قسم رسول الله صلی الله علیه و اگر بدانید اون چیزی که میدانم کم میخندیدید ولا بکهتون کفیقا و یاد کردیه می کردید و ما تذتتون بهنسی على فروش به هیچ وقت با همسرانتون خوش نمی شدید لذت نمی بر از همسررانتون در رختخواابتتون ولا خرجتون ل سعات تجرون ال الله می رفتید یک گوشگی خلتی میگرید کیه گذاری می کردید تضرح می کردید درگاه الهی دست به دعا بر میاشتید با الله بناه می از خشمش، از عقوبت و عذابش اگر میدونید اگر میشنیدید اون چیزی که من میشنیدم میشنوم. اینجینی رسول الله صلی الله علیه و سلم در یاد میکنه سپس میگه تو من صرف و ابکل قو وقتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم میاد بهشون این چینین میگه که به حال روز خودتون بنگرید بدونید که در پیشی روی شما بالاخره اون جایی هست که حساب کتاب میشه و آخر از اون حرف رسول برداشت میکنن دیگه تا آخرش میکنن اگر بدون آن چیز خاصه سان میدونه کم می‌خندیدن و زیاد گریه می‌کردن خب فوراً این سخنانه اندک کم تاثیر در اونها میگذاره قلبشون زنده میشه اینجا بیدار میشن چه چی چیز ذلت بر بیداریشون میده فوراً اونها شروع میکنن به گریه کردن ثمنا صرفه و کل قوم اون صحابیه که اونجا نشسته بودن همه شروع میکنن به گریه کردن میگرین چرا این گریه از کجا آمد؟ نور وحیه روح قوان حرصند به وحی الهیه سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله قلبشون را زنده میکنه با یک تلنگری با یک اش یعنی اشاره ای اونها بیدار میشن هوشیار میشن خب پس گفتیم این نشانه مکانات مکانت و جایگاه اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. که چنین پنتذیر بودن و چنین قلبشون زنده بود که فوراً اون وحی در اونها یا اون سخنان رسول الله در اونها تاثیر گذار بوده خب ثم انصرفوا وأبكي القوم وأوحى الله عز وجل إليه الله فاحم الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فاحم يكون يا محمد لما تقنط عبادي رب خب إنجاء إكمن سليها سوونا من غير صلى الله عليه وسلم ويا قرآن كني وأوحى الله عز وجل إليه الله فاحم يكون كذي فاحم يكون الصنّة سخنانی که رسول الله داره درباره اصحابش میگه، الله عزیز وقتی که میبینه اصحاب یک سخنان خیلی اندک و کم از رسول تذکر رو یادواری کمی این در آنها تأثیر گذاره و اینها دیگه شروع کردن به گری کردن الله رحمه الله لطیفه به الله راویه و حبیب یا محمد لی من عبادی چرا آنها را مأیوس میکنی اینها و میدشون میکنی از رحمت؟ فرجع النبی صلی الله عليه وسلم ا بر میگرده و اون هم حفت قاله ابشیر و صد دو و قاری بود ابش رو و صد و قاری در روای صحی مسلم اومده می قاله فقط قطح و سه وجود همله هم خنین وقتی که رسص اصل میاد، ها یادآوری میکنه همه ماان سر و صورتتشونو بشوندن و صدای خنینشون اون صدای گریه همه در اومده بود از دلشون داره داشت اون صدای گریه در می اود بیرون میومد تاثیر گفتم تاثیر. اون سخنان بر اونها چی چیز میشه که این سخن خیلی اندک در اونها تاثیر بذاره چون اونها قران خوندن چون اونها گفتن میدونن احوال روز قیامت حساب و کتاب و جهنمی که در قرآن یاد شده میدونن الان بیا این حرف رو به یک شخصی قرآن نخونده یا تفسیر قرآن نخونده بیا بگو بهش توش میذاره رسول الله ص گفته اگر بدانید اون چیزی که من میدونم کم میخندیدید و یادگاری میکردید خب بعدش می خب چی چرا باید بگریم نمیدونه نمیدونه بگریه به خاطر گناه معصیتی که انجام داده، کویتهایی که در عبادت و طاعت داشته. بگریه به خاطر اون روزی که جلوه الله می و توشه و عملش اندکه. باید بگریه بر حال روز خودش. یا محمد علیه السلام، لمت قنط عبادی؟ انجا یک مسئله هست در اصول فقه یاد میشه. بابا اینم اینکه تأخیر البیان عن وقت الحاجتی لا یجوز. تاخیر البیان یک مسئله داره روخ میده مثل قضیه ابا سوده و تवला رخ داده اشتباهیه هرچند که اون نابینا ندید عبدالله مکتوب ولی الله میخواد بگه که این پیامبرمون چون ناقل وحیه چون ناقل وحیه ما ازش اون چیزی که در ظاهر اشتباه نیست ولی اشتباهه نابیناست ندیده ولی با وجود الله میگه این چیز که اشتباهه اونم خم ابرو وردن در مقابل یک مؤمنی من این چیز راست پیامبرم نمیپذیرم از باب اولا چیزهای بزرگتر از رو رسول الله صلی الله علیه و سلم چون واقعه وحیه تاثیر میشه خب اینجا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اومد یک حرفی را به اصحاب و میزنه اون حرف در اونها تاثیر میگذاره اون حرف اشتباه نبوده به ذات خودش اگر بدانید اون چیزی که من میدونم کم و می خندیدید بس میکردید نگفت که شما جهنمی نگفت که شما عذاب میبینید و عقوبت میبینید انسان از حال روز خودش بهتر میدونه اونها این چیلیم برداشت کردن اونها این چیلیم برداشت کردن از حرف رسول الله صلی الله علیه سلم. الله جل و علا. از رحمش و لطفش به رسول الله صلی میکنه میگه که این موعظهی ای که تو دادی این تذکر یادواری کوتاه بود جایی فقط عقوبت را گرفتن و فقط بحث از جهنم کردن سبب میشه که انسان معیوس بشه به درگاه الهی در کنار اون بشارتن بهشون بده اینکه یاد آوری به جهنم نشه نه که اون حرفها گفته نشه نه گفته بشه و در کنارشی به شارتم باشه ابشار رو و صد و قاربه، هر دو با هم همه خ الله و علا. در قرآن وقتی که یاد میکنه اصلا اگر میگه ان الابرار رو نفی نعیم، بعد از او میاره ان فجره لفیجهین ابرار رو میاره فجار میاره اگر میگه کلا ان کتاب فجاری لفی سجین، بعد از اومیار می کلا ان کتاب الابرار لفی اللیین. ما ما اليون كتاب مرقوب يشهده المقربون ان الابرار ان بلکه اون وصفی که از زندگی ابرار میکنه الله بیشتر از اون جهنم اونم به خاطر انسان مایوس نشه انسان نامید نشه به خاطر همینی که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که الله نشینی یاداوریش میکنه برمیگرده به اصحاب یاران برمیگرده و اونها رو بشارت میده میگه ابشرو بشارت بدید بشارتتون میدم بشارت مجده به مجد اون رحمت و لطف بی پایان الهی، بزرگ الهی، عبشرو و سددو. یک قسمت گفتیم الان در کنار اون گوش زد و یادآوری آوری الهی بعد بشارت و مجدم، مجدگانی توش باشه تا انسان تشویر بشه. چون انسان اگر فقط گفتیم عقوبت را بگیره لذت از اون عبادتش نمیبره. لذت از اون طاعتش نمیبره. چون میدونه که جهنمی به عقوبت میشی؟ و حاضر ادعا میکنین برای الله ما عذاب نده ما عذاب نده دیگه غافل میشی از اون رحمت الهی غافل میشی از اون لطف الهی چشمی میبندی بخاطر همینه که الله جل میکن بر و علا اینجا رحم کرد به الله صلی علیه وسلم که ای محمد بشارت بهشون بده چون بشارت صاحب میشه که انسان لذت ببره از عبادتش بیسته با شوق با شوق به دیدار الله با شوق به ملاقات انبیا و صدیقین در بهشت صاحب میشه که انسان مشتاق بشه صاحب خوشحال بشه از اون عبادتش لذت برد و سد دیدو. تسدید دو تا معنا داره تسدید معنای اولش صداد در وسطیته در اعتداله یک،, یک از اون معانی که گفته شده که انسان غلوب نکنه افرادگر نباشه افرادگری چه موقعه؟ افرادگری مثل خوارج فقط چسبیدن به ظاهر قرآن حفظ قرآن و تهجد خوندن همونطور که رسودا صاحب شرم در بس به اونها میگه نمازتون حتی در مقابل تحقیل میکنید. از بس که می گریان از بس که تهجد می ولی شیاطین الان در جسم یک انسان سنگ سخدل، سخ رحمی در قلبشون نیست خب چی چیز سبب شده که اینها این بشن عدم تسدید عدم اعتدال میان روی تون رویشون افراط سبب شده که اینا سخدل بشن سنگدل بشن این تون روویه تون رو نباشید اعتدال در عباداتتون داشته باشید این یکی از معانی وقتی گفته میشه اعتدال در عبادت یعنی اینکه نه که هر روزتون بشه روزه هر شبتون باید کل شبتون بشه تهجد نه اعتدال سدده هم خود رسول الله صلی الله علیه و از عبادتش میگه من گاهی روزه میگیرم گاهی نمیگیرم گاهی شب قیام میسم و قسمتی دیگر میخوابم همبسری میگم با همسرانم در نکوهش به اون نفر از اصحابش میگه و سنه فاری گفتن یکیشون گفت من هر روز روزی میگیرم یکیشون گفت من کل شبو تهجد میخوام یکیشون گفت من نزدیک زنا دیگه نمیشه بعد نکویششون میکنه میگه انی اتقاكم لله من بوتقوا ترى شما هستم ولی شب میخوابم و گاهی به تهجد مییسم یعنی قسمتی از شب به تهجد مییسم و آخر اخر حدیث اینی که از معنای تسدید معنای دیگر تسدید چنانچه ابن عثیر میگه ثواب و درست عمل کردن عمله درست عمل کردن تسدید اصل التثی چیه به هدف زدن عملتو درست و ثواب انجام بدی درست و ثواب ثواب یعنی همون معنی درست میاد در لغت عربی اون عمل درست باشه دقیق باشه یعنی چه موقع عمل دقیق میشه عمل به هدف میخوره که موافق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه این تثیته تو هر چقدر نماز بخونی هر چقدر سر به سجده بذاری اگر بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه ما لیسه علیه امرو نفه هو. چیزی که امر ما بر اون نباشه مردوده نمازه مغرب سرکات، تو به جای سرکت سیرکت بخونی مقبوله به درگاه اللهی؟ نه مردوده کرد، ده برابر سرکاته، ولی اون عملت میشه مردود چرا؟ چون تسدید به هدف زدن توش نیست بس عمل باید مسدد باشه یعنی دقیق باشه باید طبقه آن چیزی باشه که الله وحک کرده به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بغتر همین که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم میفهم این نماز کما رأیتومونی اصالی نماز چنانچه من نماز میخونم این تسدیده ابشرو و سددو و قاربو مقاربات اقتصاده مقاربت ترک قلبه همون چیزی که در مورد تسدید در معنی اول گفته شده در مورد مقاربت گفته و قاربو هرچنکه و قاربو بیشتر از باب استمرار میاد دست از عمل نکشید انسان خسته میشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین این لیکل شیء شر و لكل شغلت فتره. هر چیز شروع انشاطی داره شروع شوقی داره هر شروع شوقی هم برای خودش سستی و تمبلی داره فترهی داره که انسان سست میشه انسانه که باید خودش رو در اون فتره در اون سستی خودش رو نگه داره مواظبت داشته باشه بر اون چیزی که سابقا انجام میداده نه اینکه تو شب 2:00 6 ساعت به تهجد بعد در اون فتورت دست از اون تهججت بکشی نه یک عملی بگیر که از پسش بر بیای همیشه بتونی انجام بدی مثلا اون تذکر یادواری که رسول الله صلی الله علیه و صحابی میاد میگه هر روز روزه میگیرم گفت نه گفت بس یک روز زرمیان و اله آخر که رسول الله صلی الله علیه به تذکر میده یاداوری می که عملی رو بگیرید که طاقتش داشته باشید، تحملش داشته باشید بر خودتون سخت نگیرید، شاق نکنید خودتون رو در مشقت در اون عبادت نیندازید، این معنی مقاربه هست یعنی عملی انجام بدید که از پسش بر بیاید، نما فوق طاقتتون فوق تحملتون قال المؤلف رحمه الله، باب اذا اقبل اقبل جميعا و اذا ادبر ادبر جميعا حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنتي قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم تر عین مثله ولن تراه 111 این باب از ابواب سهی مفرد گفته ایمان بخاری رحمه الله و اسکن فسیح باب و اذا اقبل اقبل جمیع و اذ ادبرا ادبرا از آدابه که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بر اون بوده با کسی حرف نزد با کامل جسدش و حواسش به طرفش بود و اگر میرفت کامل میرفت یعنی از کنارش مثلا فرض کاری نداشت طرف مقابل حرفی سخنی نداشت کاری نداشت رسول الله صلی الله علیه و مشغول کار خودش میشد و میرفت مثلا اینجا ادبه طرف نشسته جلو پدر و مادرش موبایل دستشه چیزی که بشینه با مادرش حرف بزنه از این گروه مجموعه با گروه مجموعه دیگر از حرف با این با حرف دیگر حرف زدن با پدر و مادرش راها کرد به اون موبایل این خلاف ادبه رسول الله صلی الله علیه و مقامش عربی میاد غیر آرام جاهل غیر کل وقتش رو میده به اون طرفی که اومده باهاش سلام میکنه اون وقت اون کسی که باهاش حرفی داره سخنی داره حاجتی داره کل خودش هوش و حواس و جسم تنش حتا یعنی اینطوری میخواد امام بخاری اشاره بکنه با توجه به این حدیث ابوریه رضی الله عنه و غفر الله له و لامه میگه یاد حدثنی اهدب الشفرین ابيض الكشحين اذا اقبل اخول جميعا و انكتب بمن سخن گفت یعنی حرف زده هم صحبت بوده که موهای پلک چشمش بزرگ بود یه از وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم موهای های چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم درشت و قلیز بود درشت بود بلند بود یکی از اوصاف زیبایی به همین یکی از ابزارهای زیبایی زنان وصل مو هست حتی بر روی پلک پلکای های مصنوعی میذارن اون موهای موجه موجه های مصنوعی می‌ذارن برای اینکه اون موها درشت به نظر بیاد و بلند به نظر بیاد. رسول الله صلی الله علیه و از بس زیباییش این بود. ذاتاً الله اینجنین در وجودش در تنش گذاشته بود. موهای پلک چشمش درشت و بلند بود. اون موج‌هاش. ابيض کشحی کشح پهلوهای انسانه پهلوهای رسول الله صلی اللہ علیه رسول الله, رسول الله علیه و سفید بود. داره وس می‌کنه رسول الله صلی الله علیه و آله چو دیده. یعنی می‌خواد بگه الله من دارم بعد از اصاف کسی میگم که با چشمم جان و تنش رو دیدم غیر از اون اخلاقش، اون ادبش اون احترامش از اون حرف و سخنش چون قدیما خستن در وقت احرام طرف یک ازاری میبست و یک پارشه رو بر دوش مینداخت خستن وقت پارشه رو دوش بندازی دیگه پهلوهاد مشخص میشه چون برای شخص مهم باشه که چطوره که ابو حرره پهلوهای رسول الله صلی الله علیه وسلم دیده اون زمان اینجوری لباس می پوشیدن و راحت می دیدن یعنی این قسمت هایی که مجاز و عورت نیست بچی میخواد پهلو باشه چی میخواد بازو و ها باشه اذا اقبل اقبل جمعه از بس به اون رسولی پیغمبری که من این اوصافشو دارم بهتون میگم وقتی که رو به طرف کسی می اومد روی می اوورد باش میخواد حرف بذاره اخبره جمعه یعنی با کل جسمش رو به روی طرف مقابل می و باش حرف میزد. و اذا ادبره ادبره جميع وگرم روی می گردون پشت می کاملا روی بر می گردون. لم ترا عینون مثله ولن تراهو نه چشمی مثل او رو دیده و نه مخواهد از زیباییش گفتم نه زیبایی خلقیش حتی خلقیش رسول الله صلی الله علیہ وسلم هم خوش چهره و زیبا چهره بود هم خوش اخلاق و خوش برخورد و خوش برخورد بود سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمدك و الله على محمد و علي محمد